صحبت این جلسه درباره ماهیت و ذات علم و تکنولوژی هست شما ما ساداتی داشتید میتونید ساداتیشون شروع کنید از شون من میخواستم این رو شما توضیح بدید که بشر قرنها تلاش کرد تا به واسطه علوم دینی یک بهشتی را در همین دنیا برای خودش مهیا کنید اما تجربه تاریخی و به خصوص تجربه تراژدی قرون بستا جز یعص حاصلی برای بشر ایجاد نکرد و از اون پس بود که بشر رو به علوم دنیاوی کرد تا از این طریق این بهشت ایجاد بشه و الان ما در قرن بیست و یکم هستیم و در واقع در اوج برخورداری از این علوم دنیایی به سر میبریم اما نه تنها این بهشت ایجاد نشده بلکه زمین تبدیل به یک دوزخ شده و از بابت جنبهی معنوی هم بشر در اوج نیهیلیزم و هیچو پوچی به سر میبریم من از شما خواهش میکنم که این رو توضیح بدید که چرا این محاسبات و این آرمان های در واقع بشر این چنین وارونه شد و بشر نه به بهشت رسید و تنها دوزخ رو برای خودش رو کرد <تصفح> <تصفح> من یاد سخنی از عزت علی علیه السلام میگفتم در این سوال شما. عزت کلامی دارند بسیار ساده و بسیار عمیق. حقیقتا این کلام ایشون مثل اسمی اعظم میمونه که میتونه هر سوالی رو هر معمایی رو پاسخ بده. و اونی که میفرماد مضمونه سخنشون رو می فرمان می خود جمعه رو از برد نیستم من دقیقم که هرگاه در آقابت و پایان هر راهی هر اقدامی هر برنامهی در زندگی به بومبستی رسیدید به پوچی رسیدید به بتالت رسیدید و دیدید که هم برنامه ها و هون آرمان ها که در سرداشتید حاصل نشد و بلکه محخوص عذابتر آمد شما بایستید همین راه آمده را یک بار دیگه به عقب باز کردید، دیگه کنید در ذهنتان با فکرتان مرور کنید و به مبدع آن واقعه که شروع کرده بودید به مبدع آن برنامه برسید و در این صورت خواهید فهمید که چرا به بنبست رسیدید چرا این فکر شما که بسیار فکر خوبی هم بود ظاهراً چرا پاسخ مطلوب رو نداده بلکه پاسخ معکوس به شما داد خب این کلامی که حضرت علی فرمودند به دیگر همون است که در قرآن کریم ذکر نامیده میشه یعنی به یاد آوردن همون خب ما میدونیم که قرآن کتاب ذکر است اون خود قرآن هم گفته اصلا دین راه ذکر است اصلا مؤمنان علی ذکرند از ذکر این یاد آوردن نه خوندن خوندن یاد آوردن. خب بنابراین از این فرمان که اگر بیاد بیارید کلی رای رو کته کردید یک بار دیگه به واسطه عقل و خرد خواهید فهمید چرا شکست خود شما حالا با توسط با همین شاکریت حکمت امام من سعی می به این سواب شما نگاه بکنم یعنی با دید که دانش دنیاوی و علوم و و تکنولوژی این راه یکی دو هزار ساله رکته کرده چرا به اینجا رسیده؟ پس ما برمیگردیم، به عقب برمیگردیم در حقیقت من سعی میکنم یک کمی دیگه سؤال شما رو من مستر کنم تا این ذکر و این بازگشت جدیتش و اهمیتش من مستر باشه من سوال شما رو بیشتر توضیح میدم خب ببینید علوم طبیعی یا علوم تجربی قرار بود طبق ایده های نخستین بشر موجب سلطه انسان بر جهان بشه بر طبیعت بشه انسان بتونه بر طبیعت فایق بیاد مسلط بشه و طبیعت رو در اختیار آرمان ها و اهداف و رفاق یه خودش بگیره و این زندگی بهشتی و زیبای برای خودش درست کنه ولی ما میبینیم امروزه که درست برعکس شد انسانه که به دام جهان و طبیعت افتاده از طریق علوم فنون و تکنولوژی و سنایهی که پدید اومده انسان مغلوب و مغهور این علوم و فنون خودش شده اسیر جهان شد نه تنها شاه نشد بلکه برده بیشون و چرا شد برده جبرهایی شد که از این طریق پدید اومد چند تا مثال بزنیم مثال امروزه بعد نیست لایه پاره شدگی لایه اوزون و تشهرشاهایت مرگباری که صدها بیماری جسمی و روانی برای بشر امروز رو درست میکنه که ادامهش میتونه نسل بشر رو براندازه خب این حاصل مشخصه که صدعت بود که این کار کرد این طبیعت این کار به صورت آباری بر سر بشر داره خراب میشه انگار آسمان داره سراخ شده و انگار داره میفته پایین به سر بشر داره بیفته مثل اینه دیگه پارشو دیگه لایوزه اینی آسمان سراخ شدن آلودگی های محیط زیست که دیگه نیازی به توضیح نداره صدهان و آلودگی که هم عذاب تن و روح و روان بشر شده و نهایتا میتونه اصلا نسل بشر را از کره زمین براندازه سلاحای امهای جمعی خود شده که کل بشریت رحزه احساس امنیت نداره و ارباب شده این صلاح های امهای جمعی بر بشر تخل میرانه که بخواد بشر رو برده قدرت خودش یاده انواع ویروس کاملاً کاملا مدر که جاییدن به وجود اومده انواع عذاب های لاعلاج حاصل از آلودگی های تو صوتی، تشهر اشراعات اینها اکتیویته، این چند فقط نمونه مشهوره. یا مثلا نگاه کنید علم طب قرار بود، امراض بشر رو شفا بده و عمر بشر به و حتی آرمانش این بود که انسان رو در عالم خاک جابه کنه. آرمان ذاتی علم این بود که مرگ رو نابود کنه. خب ما دید اینطور نشد که هیچ و که هیچ همون عمری هم که بشر داشت رو تماما تبدیل به انواع و اقسام امراضی ساخت که این امراض رو خود این علم و فنون پدیدا بردن ما میدونیم که خیلی از ویلوس هایی که این واخر هیچ علاجی ندارن مثل ایدز مثل ایبولار، مثل سارس اینها رو دیگه خود علم و لابراتوارهای های و بیولوژیکی پدیدا بردن یه مثال بود علوم اجتماعی رو مثال میزنیم. علوم اجتماعی قرار بود که موجب پدید آوردن قوانینی بشه که صلح رو آرامش رو امنیت رو عزت رو در بشر افسایش بده بشر بتونه در آرامش و محبت و ادالت زندگی کنه حالان که ما دیدیم که در تجربه این تی دو سه قرن اخیر و به خصوص قرن بیستوم که قرن ایدولوژی بود این ایدولوژی تماما محصول علوم اجتماعی بودند هر دوم از ایدولوژی ها شدند یک یوغی عظیم بر برگورده بشریت و جوامه را به زیر اشد ستم ها و خفوان ها کشندند خود این ایدولوژی ها که همه محصول علوم اجتماعی بودند مولد دهها جبر شدند جبر تاریخ، جبر جامعه، جبر حکومت جبر آزادی، حتی آزادی اون روزه جبر شده باقید. اینم پاسخ علوم اجتماعی که میخواست جوامع را به صلح، و اتحاد و محبت و ادالت بکشند. علوم تربیتی و روانکاری ها و روانشناسی ها را رو نگاه کنید قرار بود روح و ذات بشر را بشکافند و بشر را از ظلمت و جهر نجات بدن، به بشر عزت و آرامش بدند تضادهای درونی بشر را حل کنند جنونهای درونی بشر را علاج کنند ولی دیدیم که نتیجه این علوم تربیتی و این روانکاوی ها ما دیدیم که هرگز نتونستن سر هم از, از پایینتنه به بالاتر برن و بشر رو فقط محدود کردن به شکم و زیر شکم و شکم و زیر, شکم و زیر شکم محدود کردن و بشر رو هزار برابر بیشتر اسیر پایینتنه خودش کردن نتون بشر به بالاتر نرسید و بلکه در پایینتنه خودش هزار برابر اثیر شد و تا جایی که پایین پرستی دونون شکم وزیر شکم پرستی اصلا قداست پیدا کرد که انسان این است و انسان ایدالو با تربیت هم است که بتونه غرایز شکم وزیر شکمی خودش رو جولان بده و به عرش برسونه و بفتست این هم نکیزی علوم تربیتی و دوانکابی ها من مدل رو من اینجا یاد کردم برای تکیه سوال شما حتی علوم دینی رو ما نگاه کنیم علوم دینی هستن علوم دین. خود علوم دینی قرار بود بشر رو از اسارت خاک و حقارت تن نجات بده روحش رو به آسمان برسونه و به خدا برسونه و به انسان احساس خدایی بده از این حقارت و بدبختی دل بیاره از این منجلاب غرایز بکشه بالاتر از اسارت خاک نجات بده به روح انسان رو وسعت ببخشه و دیدیم که در طول قرنها در همه مذاهب این علوم دینی هم تبدیل به یک سری فنونی کلیشهای شدند و یک سری و ها به احکام کلیشهی خوشک و منجمد و بیروح پدید آوردند که خود اونها تبدیل به صدها زنجیر بر بل جان و روح و اندیش و احساس بشر شدند و بشر نه تنها توسعه ندادند بهش روح نبخشیدند و او را به خدا نرساندند و بلکه اصلا صورت مسئله که خود خدا بود هم اصلا خدا فراموش شد و آفتاب لگنهای هزاران دست این علوم و فنون دینی و آداب خشک شرعی خودش هدف شد. این قرار بود وسیله باشه انسان به خدا برسه حالا خود این وسایل قداست پیدا کرد، آداب عبادی شرعی قداست پیدا کرد و خود خدا اصلا فراموش شد و و بخصوص در تجربه قلوم وقتی که علوم دینی هم دیگه بشر رو ناامید کرد و تجربه قلوم وستان داد که این فنون دینی فقط روح انسان رو به بند نکشید و از خدا بیزار نکرد و بلکه قتلگاهی پدیدا آورد به اسم امپراتوری مسیحیت و سلطنت ایسا مسیح در کلیسه ها قتلگاهی بوجود آورد که حتی به زن و بچه ها هم رم نمی کرد نزا بشر تصمیم گرفت یک با برای همیشه از شر دین و علوم و فنون دینی رها بشه و بچسته به دنیا و علوم دنیاوی بچسته و از آن حدود ده قرن هست که دیگه بشر تمام هم مقامشو با این اساس قرار داده و در قومه اخیر دیگه در علوم دنیاوی به رشد و واقعا موجز آسها رسیده و در, در زمانی که قرار بود دیگه به نظر میمد در تیه یکی دو قرن اخیر واقعا بهشت هشت مقود اخروی در دنیا و قرار بشه و به دیگه داره دیگه پیداش میشه. این بهشت بهشت یا با شما سیمای دوزخی خودش رو امروزه آشکار کرده و اون حتی همون حیات قریدی و جانوری جا هم که بشر در گذاشت داشت رو هم نابود کرده و میره که اصلا نسل بشر رو از کره خاکی براندازه و بلکه خود کره خاکی رو هم از مدار خارج کنه و محتلاشی کنه. خب پس ما مجبوریم که به قول علی علیه السلام این را رو یک بار دیگه مرور کنیم ببینیم از کجا شدون شد اگر آقابت هر امری نشان میده که مبدع و شروعش چیم بوده آه؟ چرا؟ آنچه قرار بود بهشت و جابدانیگی رو برای انسان تنیر کنه در روی زمین جهنم و نابودی رو آشکار کرده نابودی و هیچی رو پوچی رو آشکار کرد من شما رو برمیگردونم به چیزی حدود دو تا سه هزار سال پیش خب این کاملا واضح و بدیهیه که تمدنی که امروزه بر کل جهان و بشریت حاکم هست شامل کل علوم و فنون و فرهنگ نظام اقتصادی سیاسی و همه اناسور تشکیل دهنده این تمدن هم از مادی و منوی این واضحه که یک پدیده است کاملا غربی و برخواسته از غرب در این تردید نیست در این ذات و تاروپوتش غربی است ولی طبیعی است که در این دو هزار سال عناصر شرقی اسلامی هم آثار بسیار تنین کنندهی بخشیدند بعد این تمدن قربی در این تردیدی نیست هم از جنبه دانش هم از جنبه فرهنگ هم از جنبه علوم دنیاوی هم از جنبه فلسفه آثار بسیار بزرگی داشتن ولی ذاتش مبدعش است یعنی در واقع یونانی هست در به همین دلیل که فرماندهی کل قوای این تمدن هم در دست دربی هست. کل هجمونیه بشری امروز در استوبریاس علتش اینه که ذات این تمدنی که بر بشری امروز حاکمه غربی است و تمام ارکانش غربی است یعنی یونانی است ولی عناصر مسیحی وارد شده عناصر اسلامی وارد شده عناصر بودایی وارد شده و صدها عناصر غیر قربی هم وارد شده غیری یونانی هم وارد شده ولی ستون از این تمدن غربی مابقی آویزه ها و تزییناتی بر این تمدن شدن به صورت پارامترها و عوامل هااشایی اثر گذاشته. در این تدیدی نیست ال لازم مادیت این تمدن منظورم است خوب وقتی ما میخوایم به منشاء این تمدن باز کردیم مثلمان به یونان باز کردیم و به یونان قبل از مسیح بایستی بازگردیم کردیم که گفتم حدود دو تا سه سال قبل از میلاد مسیح ببخشید حدود دو سه هزار سال پیش از این یعنی حدود هزار سال قبل از میلاد مسیح هزاره قبل از میلاد مسیح همه چیز در اونجا اتفاق افتاده یک <تصح> واقعی در قرون تقریبا هفتوم هشتوم قبل از میلاد تا دوم سوم راول از میلاد تا ظهور صغرات و افزادتون ارستو در این دو قرن واقعی رخ داده در یونان که به نظر من از همونجا نطفه ها و ارکان ذاتی این تمدن در اونجا پیریزی شده و نطفه هاش بسته شده این واقعه رو تا اونجا که من تا دارم نه در تاریخ تمدن نه در تاریخ پس اصلا از این دیدگاه و از بابت این اهمیت مورد نظر برلسی قرار نگرفت. این واقعه رو شروبستش بسیار اساسی است در ده ها ساعت هم نمی کنجه فقط اشاره کن. ما به این بساده می ما میدانیم که کل آنچه که فلسفه و حکمت یونانی رو می ده که منشه تمدن امروزین قرق و کل جهان هست در قرون شیشم پنجم و چهارم قبل در میلاد مسیح در مجمعی در نهزت فکری و حکیمانی در شهر العا از بنادری در مدیترانه رخ داد و نهزتی حکیمانی رخ داد که نامی که از اونجا باقی مانده معروف به حکیمان العات یا العایی که مشهورترین این حکیمان در این در شهر ال آ در بندر ال آ پدید آمدن و ال بودند بودند. اگر اله نبودن در آنجا متمرکز شدن مشهورترین اینها اینها ها برمنداس هست پروتاگوراس جورجیاس حکیم ملسیوس و زنون اینها مشهورترین و اساسی ترینه این حکیمان هستند و پایریزان حکمت الهی در این نهظت فکری یکی از بزرگترین و عجیبترین نهزت ها بوده الاظ فکری بحث برای اولین بار بر سر هستی و نیستی بوده که هستی چیست وجود چیست این حکیمان مذکور به دو شعبه تقسیم شدند که سخنگوی یک شعبش جورجیاس حکیمه و شعبه دیگریش پارمینیدزه یا برمنداس اینا اسمایی هستش که به زبان لاتین یا یونانی به لفظهای متفاوت خوانده میشه در عربی با به شکل دیگری خانده شده صحبت به اصل این بوده که هستی چیست جورجیاس حکیم معتقد بود آنچه که هست زمین و آسمان و تمام موجودات مادی و محسوس اینها نیستند وجود ندارند تباهم بیش نیست یه شون داشت. یعنی متقرب بود آن که ما بیپین داریم هستی هست این نیستی است این نیستی است عدم است صورت آدم است. این فکر رو یکی دو سقرن بعد از میلاد مسیح یک فیلسوف عارف مشتبه دیگری به نام فلوتین که در جهان اسلام رو زیادی کرد پیدا شد و این مکتب رو واقعا تبدیل به یک مکتب فلسفی مدون کرد و ایشون در این مکتبش کاملا ثابت کرد که عالم ماده عالم محسوسات جهان مادی اینها عدمه اینها فیستی هست صورت عدمه ماده صورت عدمه ظهور عدمه این کامل شده همون اندیشه جورجی در نقطه مقابل چه این نظری فیسوی بسم برامندس یا پارمنیتس یا برامنیتس قرار داشت که او هم از هست ایشون معتقد بود آنچه که هست هست و آنچه که نیست نیست و هستی همون چیزی که ما میبینیم احساس میکنیم هستی همین است. و حقیقت هم همین است. از همینجا کاملاً میشه این دو مکتب فکری فلسفی در تاریخ بشر در کرد. پیدایش ایدالیسم و رئالیسم. در واقع جورجیاس میشه گفت ایدالیسم بود. ایشو معتقد بود آنچه که در بیرون وجودی نیست، نیستی است. خب هستی در کجاست؟ هستی در من است در اندیشه من است در ذهن من است این اندیشه در افلاتون طبعا کامل و مدون شد مصد افلاتونی ایده افلاتونی در واقع افلاتون میشه گفت تکمیل کننده این فلسفه پارمیلیتس شد و معتقد شد که عالم هستی هستی حقیقی هستی مصدها و ایده هاست یعنی ذهنیت پس در واقع میشه گفت و بعد از او یه بعد از او افلاطون بنیانگذار ایدالیسم دا بود دادا پارمینیس خب پارمنیدس بله پارمنیدس بنیانگذار رئالیسم بود جورجیاست و بعد از او افلاتون و بعد از افلاطون فلوطین اینا بنیانگذار ایدالیسم بودند یعنی واقعیتی بیرونی رو این قبول نداشتن معتقد بودند که این واقعیت هستی نیست این ادمه هستی در ذهن انسانه جهان ایده ها اینها پس بنیانگذار ایده و ایدالیسم در نقطه مقابل پارمنیدس و پیروانش بنیانگذار رئالیسم بودند معتقد بودند که آنچه که هست همان هستی هست آنجایی که نیست نیست میستی نیز نیست هستی هم هست. در هرگاهان چه که فارملیسم باستی گفتش که بانی رئالیسم در فلسفه و در واقع بانی عرفان در یونان باستان باستی دونست بانی عرفان. دنست. او در معتقد بود که انسان میزان ارشدی است. انسان میزان ارشدی است. معتقد بود که حقیقت خود خدا، اون حقیقت مطلق، اون آرمان آن بهشت، آن مطلق هم در همین جهانی که ما میبینیم حضور داره مباستی تا کشف کنیم اون رو. یعنی حقیقت هم خود همین واقعیت محسوس جهانه یعنی آنچه که باید باشه همون چیزیست که هست منتا ما نبینیم خب این از جهل ماست ما از طرق حکمت بارستی آن بهشت رو آن آرمان رو آنچه که باید باشه رو در آنچه که هست درک کنیم و جهانی غیر از این میشه اون رو فلسفی یا همان عرفان چرا وقتی کل عرفان ها معتقد بودن خدا خدا هم در این جهان حضور داره ما تو ما چشمی دیدن نداریم با چشمون رو واس کنم اندیشه پارمنیدس در یونان اقیم شد پارمنیدس و دوستانش مثل اگسروفانس و پرتاگوراس اینها مردم بیختن به دستور حکمرانی دوران حکومت ها خاناشون آتیش دادن آثارشون سوزوندن و اینها رو تا و تبیهی کردند. در واقع نطفه این فکر در یونان اقیم و کاملا نابود شد و بنابراین اندیشه جورجیاس رسید به افلاطون، از افلاطون رسید به ارسطو، همطور همینطور رسید به امروز در تمدن قرم تاریخ فلسفه که تماما ایدئالیزم هست یعنی, یعنی آقا من این جهان قبول ندارم آقا به زبان ها این میشه من جهان دیگری میخوام و هم آن رو میسازم چبونه؟ در مغز خودم در ذهن خودم آن رو من میسازم بنابراین اولین باست که آن فلسفهی که تمدان غرب رو وجود آورد که همه تمدان های هم در خودش هر کرد و به خدمت گرفت و بر جهان امور مسلط شد فسطفه ایداریزم بود زهنگرایی بود خب حالا ما نگاه کنیم میبینیم که نخستین الفبای دانش فنی علوم دنیاوی از چنین فکری شروع شد نا فیستوفاش بودن حکیمانش بودن و اما دانشمندانش که در همون هول و هوش بود وجود اومدند در اطراف همین حکیمان وجود اومدند کسانی مثل تالس حسابورس، ارشمیدوس، اریدوس، بطلمیوس، بوغرات، دموکریتوس، هیپوکریت و آلاستو اینها دانشمندان مجری این فکر این حکیمان ایدئالیستی بودند که عالم وجود رو قبول نداشتند گفتن این وجود نیست تا آنجایی که می گفتن این عدنه فقط انگوش شمالی بودن که اینقدر تونستن مطلق خرق بزنن که بگن اقا این آدم هستی نه که ناقصه به درد نمیخوره ما رو خوشبخت نمی کنه که آقا این نیستی هست خب کسانی مثل فقط جورجی و بعد از اون ترمان می شود فلوتین اینقدر کردند بدا کردن شدن و اینو در مکتب خودشون ثابت کردن که آدم ماده صورت عدم صورت عدم است. خب. پس حالا بایستی نشست و هستی رو و وجود رو چکار کرد؟ به وجود رو دیگه خلق کرد درسته؟ خیلی خوب نظر نقطه ابداع شد بشن نقطه رو اختراع کرد نقطه یا صفر خب نقطه و صفر چیه؟ ذات دانش دنیاوی و علوم و فنون تکنولوژیست نه نقطه وسط خب نقطه در ریاضیات در مکتبی فیسان قولس ورش میدوست تعریف شده تمام اون مرسه رفتیم اندسه رو میدونیم دیگه نقطه میگن چیزیست که نه طول داره نه عرض داره نه عمق داره نه حجم داره نه وزن داره یعنی وجود نداره بس نقطه یعنی عدم عدمی که فرض میشه که وجود داشته باشه تا آدمی که ما فرض می‌کنیم وجود داشته باشه پس این تمدن این علوم فنون دانش علمی دانش دنیای بشر برای اختراع نقطه آغاز به کار کرد نقطه چیست چیزی است که وجود نداره ولی ما فرض می‌کنیم که وجود داشته باشه ما میدونیم بعد نقطه طبق تعریف خود ریاضیات چه تعریف ارشمیدس، هلیدوس و اصلا یوسف صاغور تا به امروز نقطه به شرطی میتونه وجود داشته باشه که وجود نداشته باشه. بعد نقطه وجود خارجی ها نمیتونه داشته باشه، نمیتونه موجود باشه. پس این نقطه کجا هست. نقطه در مغز منه. من, من اون رو اختراع کردم. من نقطه رو خلق کردم. پس من چه چیزی رو خلق کردم؟ آدم رو خلق کردم. آدم رو, رو خلق نکردم فرض کردم. در کجا؟ در کلمه آ که دیگه این نقطه همون صفر نقطه پس ذات علم فیزیک میشه صفرم ذات علم ریاضیات میشه آ در واقع حساب و هندسه نقطه ذات فیزیک باز ذات هندسه است ذات هندسه نقطه است ذات ریاضیات صفره آ کل دانش فنی و علمی ها برای این دو تا چیزی که وجود صفرم وجود نداره نقطه هم وجود نداره ولی من تو کله خودم اون رو فرض کردم و بهش موجودیت بخشیدم پس از ادم شروع شد پس ذات دانش و علم فنون چیست آدم یعنی چیزی است که وجود نداره وجود خارجی نداره فقط وجود ذهنی داره وجود مثالی و مصوری داره وجود افلاطونی داره وجود ایدالی داره نقطو صفر ایداند ها پس نقطو صفر ذات هر ایده‌ای هستند تمام ایده‌ها از نقط و صف بدید اومده یعنی از عدم پدید اومده خب یه جمعه بکنیم، خب اگر حالا کل این تمدن سه زار ساله به هیچو و پوچی رسیده به انسان رو به قلم پوچی و مرگ و تباهی و ازمهلال و نابودی نسل و که زمین میرسونه طبیعیه ها آنچه که از هیچیو پوچی و نابودی شروع شده به هیچیو پوچی و نابودی باستی منجر بشه دیگه درسته؟ مقال مولانا ذات نایافته از هستی بخش که طوانه کشبت هستی بخش آنچه از عدم پدید آمده معدوم کننده کسی میشه که آن به وجود آورده درسته؟ آدم معدوم کننده است پس کل این تمدن بایستی تمام اردشاش محکوس از در بیاد و تمام کالاهاش هاش زده معنای آن کالا باشند و تمام عردش باستی بایستی محکوس از در بیاد بوده هر چیزی باستی نابودی پدید بیاری کل این تمدن یعنی تمدن نابود کننده زیره از نابودی آغاز شده از نقطه و آغاز شده از ایده آغاز شده از چیزی که نبوده آغاز شده بس کل این تمدن علمی فنی ها؟ و تمام ارکانش و پارامترها و ها و هاش همه سربرآورده از نقطه صفر از عدم لذا نابود کننده انسانه لذا میده انسان رو عذاب میده و به سمت نابودی می کشونه جهنم قدم روی نابودیه دوزخ قدم رو نابودیه آنچه که عذاب میگیم ها همیشه عذاب یعنی عذاب نابود شدن ترس از نابودی درست خب ما میگیم که جهان امروز جهان ترس, ها. ترس از مرگ و نابودی و نامنی. ترس از ویروس‌ها ترس از نمی‌دونم تشعشعاتی را ترس از بمب های اتمی ترس از هزاران چیز ترس از نابودی شما پل انسان رو به آستانه نابودی کشونده چرا برای که از نابودی سر در آورد این تمدن اپاوند همطور که خودتونم هم این تمدن حاصل ایدارگرایی انسان بوده اما مثلا اینه که این تمدن و تکنولوژی علم اینها واقعیت هایی رو برای بشر ایجاد کرده واقعیت های عینی و مادی وقتی ما صحبت از تکنولوژی میکنیم الان بشر بدون تکنولوژی اصلا نمیتونه زیستی رو برای خودش متصور تصور بشه بلکه شروعش با یک ایده بوده با یک صفر بوده که یک واقعیت مادی نداشته ولی الان تمام آنچه که انسان داره درش زیست میکنه از میز و نمیدونم تلویزیون و هرانچه که در اطرافش وجود داره از پوشاکی که بزن داره اینها حاصل همون صفر هست ولی واقعیت داره یعنی مادیت داره اه. از این بابت ما میتونیم بگیم که خب بشر به واسطه این که همیشه میگن بشر خلیفه خدا پس رسالت خودش رو رسالت رو که در ذاتش قرار داده شده انجام داده یعنی همطور که خدا از عدم این جهانه هستی رو آفلید پس بشر هم از عدم تونست این جهانی رو که الان داره در سیست میکنه و همه هم مادیت داره خلق کرده پس رسالت خودش رو انجام داده از این باب باید ما به بشر باید به خاطر اینکه چنین رسالتی رو انجام داده به خدا نزدیکتر میشد خدا این جهان رو برای معرفی خودش برای شناخت خودش مادیت داد و ایجاد کرد بشر هم برای اینکه خودش رو بشناسه کلان هر بشری برای اینکه خودش رو بشناسه به سمت این میره که آرمان هاش رو واقعیت ببخشه و این, جهان هست، این جهانی که ما الان درستیست میکنیم که جهانی تماما از تکنولوژیست این واقعیت آرمان های است ولی آن چی که نشون داده شده اینکه هرچقدر هر چقدر که انسان در این اینیت بخشیدن به ایده های خودش موفق تر شده از خدا بیشتر فاصله گرفته، کافر تر شده و منکر تر شده تا جایی که الان این وضعیت به جنگ با خدا بله. و الان ما می‌بینیم که هر بشری کاملاً در نه تنها منکر نیست، در جنگ با خداست. بزه بزه. و این جنگ اون رو به انهدام خودش کشونده. بله. خب ا که خب آدم یعنی واقعاً احساس می‌کنه که چاره‌ای غیر از این نیست که بشا نباید داشته باشه. چون رسالتش همین بوده. بزه. یعنی خلیفه بوده به خاطر اینکه از آدم چیزی بیافرینه و خب این کارو کرده. خب پس بعد نزدیک میشد به خالق خودش باید هم حس میشد ولی اینطور نشد و عدوتر شد دشمنتر شد منکرتر شد و الان با تن خودش هم به جنگ افتاده و تمام این سلاح هایی هم که شما صحبت کردین تمام آنچه که در اطرافش هست همه رو اصلا انگار فقط داره خودش رو نابود میکنه تا خدا رو نابود کرده باشه. خدا رو نابود باشه اینو لطف کنید توضیح بدید من این نفته که فرمودید هم سآل کردید هم پاسخ بسیار بزرگی دادید، و من انگشت و روی یکی از نابترین راز خلقت و راز تاریخ و راز تمدن گذاشتید بینهایت وصله است مهم و با ارزش نه فقط از منظر حکمت بلکه از منظر واقعیت بشره امروز برای زنده ماندن خودش کاملا درسته سالیست کاملا درست یک دیالکتیک و یک تناقض عظیم اصلا حضیقات میشه گفتش که گویی این دیالکتیکی ترین و متناقض ترین است است برای انسان در جا چه با میشه گفت این مطلبی که فرمودید راز تمام تناقض و مبدع تمام تناقضات هستش کاملا رسته خب ببینید پس بسطور جنبندی میشه گفتش که پس این جهانی که ما در ازیست میکنیم این جهان متمدن با همه ارکان و فراوردهاش این جهان تماما علمی فنی جهان ظهور صفر و نقطه است قلم روی ظهور عدمی در اینجا بایستی نظریه فلوتین رو کاملا برعکس کرد یا نظریه جورجی ها سرکیم رو بخونه اما تقدر بودن که این جهان هستی که بودود داره طبیعت این کائنات صورت عدم هست خب از پکر نه خیر این تمدنی که بشر این روز آفریده که اساسش دانش و فن هست این جمال عدم هست این جمال عدم هست صورت عدم هست ده. نه الاز فلسفی جمال عدم هست برای که انسان رو داره نابود میکنه و انسان از این طریق خب به نابودی خودش رسیده و به مالی خوریه هایی رسیده که جز خودبراندازی هیچ کار دیگه نداره نگاه کنید تمدن امروز ترین و محسوس ترین خود خودبراندازیه انسان امروز انسان خود نابود کنه خودکشی ها یکی از منوسترین بروز این خود خودبراندازیه خودکشی؟ هیچ کس نمیاد بیگه آقا برای چی انسان داره خودش میکشه آمارو اعدادی که امروزه از خودکشی وجود داره هزاران برابر بیشتر از اونیه که درد میشه در جراید بخاطر خاطر بسیاری از مسائل اینها اعلام نمیشه. خودکشی فقط یکی از صورت‌های ظاهری خودبرندازی بشره در همه ارکان بشر مشغول خودبرندازی و نابودی هستند. و در این حال الله ذهن خودش داره با خدا میجنگه، خدا رو که و در این حال انگار داره با خودش میجنگه. در اینجا نگرد خود و خدایی که شده انسان میذان که داره با با می بجنگه در عمل فیلم واقعه داره با خودش میجنگه و دشمن خودش با خودش دشمنی می‌کنه. ولی مسئله خلافات که یکی از معارف اساسی و ذاتی مذاهب بوده، در قرآن خیلی واضح‌تر اومده که خداوند قدم رو خلق کرد تا خلیفه خودش در جهانی هستی بکنه، جانشین خودش بکنه، این جانشینی معنا داره، یعنی خدایی بکنه. انسان خدایی بکنه. خب خدایی ترین صفت خدا چه چیزیست خلقت خلق کردن از عدم در قرآن داریم که خداوند جهان را از عدم آفرید هیچی نبود آفرید خب به نظر نیسته که این معنای خلافت که خدافران انسان را آفرید تا خلیفه او بشه یعنی او هم این کاره بشه یعنی از عدم خلق من. بله از صفر و نقطه تمدنی جهانی پدیدابل بر روی زمین یعنی که خلقت خاص خود آدم با عنوان خلیفه خداست ولی رسالت ذاتیش انجام داد که نمیتونست قیل از این باشه این که این اراده خدا بوده در این تردیدی نیست خدا خود این قدرت در بشر رو کن باشد تباقی آنچه اگه بشه از صفر نقطه نامید و دانش را از اینجا شده کرد دانش رو میفنید شد و این همون ادم بود در صفر یا نقطه نام دیگری از آدم این تمدن ظهور ادم تبدیل عدم به وجود به با دیگر میشه گفتش که آنچه که دانش و فن نامیده میشه قلم روی تبدیل عدم به وجوده تمام آنچه که قواعد و قوانین علمی نامیده میشه قوانینی هست که انسان بر اساس اون عدم رو تبدیل به وجود میکنه همونجور که در واقع کل این تمدن تبدیل صفر به چیزی است که این تمام دول میده میشه تبدیل هیچی به همه چیزه اونتا همه چیزی که ذاتش چی؟ نابودی بخش نابود میکنه تماماً حضاب پس میشه گفت تمام قوانین بشری یه قانون میشه نیست قانون تبدیل عدم به وجود قوانین حقوقی و سیاسی و اقتصادی گرفته تا قوانین کاملا علمی فنی و تکنولوژیکی گرفته قوانینی که در علم فیزیک و مکانیک و ترمودینامیک وجود داره قوانینی که در پزشکی وجود داره قوانینی که در شیمی و بیولوژی وجود داره قوانینی که در اقتصاد وجود داره علاقم از جمله قوانین هنری قوانین سیاسی قوانین بدنی، قوانین تربیتی همه اینها قوانین تبدیل عدم به وجوده خب مثلا این مثال های تربیت می زنیم. ما سر می‌کنیم که بالیکسری قوانینی که کشف کردیم تحت استفاده از این قوانین بچهمون رو بچه با تربیتی بکنیم که درو گه دزدی نکنه ولی هرچی که این قانون اققام کنیم بچه هم درو گ سر میشه هم دوست دا میشه نمونه مین خب ما این دانش و تکنولوژی رو پدید آوردیم این همه امکانات صنایت برای بریم که رابدتر زندگی کنیم خوشببختتر باشیم تر باشیم، همه بیشتری بکنیم تر باشیم، سرف... تر باشیم ولی مثلا چی از داره من درست برای عکس دریوزه تر، بدبختر، غنجورتر، اصیرتر و برده این الان اگه این لام خاموش شه همه چیز اون که نبوش شده ولی این برقلی رو خاموش شه زندگی تحتیل درسته؟ ولی قبلا اینطور بود، ناخیر در قرون احسار بذاشته اینطور که نبود این تلویزیون اگر بسوزه آ، این زندگی یه ای خانوادگی نابوده دیگه نمیشه اضافه بکنم چه باسن همون هم دیار به خاطر هست درسته جا یا چرا خود تلویزیون و این برق به تدریس داره آدم ها رو به غلط می‌رسونه این برق و به تدریس کور می‌کنه این تلویزیون داره به تدریس دیوونه‌تر می‌کنه آدم ها رو ها یه خودبراندازی تدریجی رخ میده شما ببینید این یه صورت چه صورت دیگه‌اش بردگی انسان نسبت به این کالاها و این صنعت ها و این تکنولوژی ها و این دانشیه که داره واسه هر کسی که دانشابی دست نیاره، ابلح‌تر و درویز‌تر میشه، نه آزاد و مستقلتر و خدای گونه‌سر، بلکه برده‌سر و ذلیل‌تر میشه داره. خب این معنا خود به خودش. حالا نیهیلیسم به این معنی که تمام ارزش‌ها بی‌پوچی داره میرسه، و آخرین فلسفه این تمدن نیهیلیسمه. یعنی مکتب اسالتی هیچ پوچی، نیهیلیز نیه نهیل یعنی هیچ پوچ، یعنی نیستی. مکتب اسالتی نابودی. اگر آخرین فلسفه‌ایه که در اومده در که فلسفه آخر و آخر فلسفه است بقول هایدگر نیهیلیسمه این یعنی مکتب صدق هیچ پوچی و نیستی و نابودی خب بله اصلا اولاً من شما دین که بقول 1980 سال پیش اصلا کل دانش و انیشه گذاشتن این به واسطه مکتب اصالتی پوچی بود مکتب اصالتی سفر نقطه مکتب اصالتی سفر نقطه یعنی مکتب اصالتی چیزی که وجود نداره ما فرض می‌کنیم که داخل وجود هم داره درسته؟ خیلی خوب پس آن چیزی که حاصل شده میبارستیم همین میشد برای اینکه اصلا این شکلی شروع شده, شده بود مبدع این را بر اصالت پوچی بود بر اصالت نابودی بود بشنگ کستش یه آن جانی که وجود داره این نیست، این نابودیه درسته؟ هستی نیست آنچه که نیست هست خب الان همین تمام وردش ها نیستن خوبی بده زیبایی زشت میشه هر ناهغ از عقدار میاد عدالت مبدل به زور میشه از تو آزادی اشد اثارت در میاد درست از آنجا که عشق نامیده میشه اشد اشتغابت در میاد داره درست است هم پوچیدن هم.